کدام سوال؟ دلیل شما برای اینکه علی کررمند لا بچه او با رسول خدا اتحاد نفسانی داشت چیست؟ دلیل ما آیه مباهله است. آیه مباهله چه ربطی به این موضوع دارد؟ ربط آن لفظ انفسنا است که در آیه شریف آمده. مفسرین می‌نویسند در جریان مباهله پیامبر با نصارای نجران امراهان پیامبر منحصراً امیرالمؤمنین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 پس از رهلت رسول خدا امت اسلام با وجود اینکه میدانستند علی كرماله وجههو صاحب فضایل بیشماری است ابوبکر و عمر را بر خلافت برگزیدند علت این انتخاب دو چیز بود اولا علی جوان بود و ابوبكر و عمر مسن بودند ثانیا بهنابه گفته عمر نبوت و سلطنت در یک خانواده جمع نمیشود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 بر فرض که حق با شما باشد آیا اقلای صحابه همان چند نفری بودند که در صقیفه حاضر شدند آیا در سایر بلاد مسلمانان هیچ عاقل لایقی وجود نداشت آیا عباس و علی جزء اقلای اصحاب حساب نمی شدند؟ آیا رأی ابو عبیده قبرکن برای انتخاب خلیفه بهتر از رأی باب مدینه علم نووی حضرت علی علیه السلام است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 اگر می خواهید معنای حدیث اجما را پیدا کنید لازم است آن را در کنار حدیث سقلین و حدیث سفینه قرار دهید تا درایت حدیث نصیبتان شود. حدیث سقلین که مورد توافق جهان اسلام است این گونه بود که رسول خدا فرمود من دو چیز گران مایه قرآن و اطرت را میان شما به امانت می‌گذارم. اگر به این دو مستمسک شوید گمراه نخواهید این دو هرگز از هم جدا نمیشوند تا در حوض کوسر بر من وارد شوند. و ما حدیث سفینه مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست. هر که به آن متوستل شود نجات می و هر که از آن سرپیچی کند هلاک می شود. اگر این دو حدیث را کنار حدیث اجماع بگذارید معنای واقعی اجماع به دست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 نتواند خلیفه شود زیادی سن به تنهایی کافی نیست لیاقت هم ملاک است خدا را خوش نمی آید که با وجود پیرمرد لایق و کاردانی مثل ابوبک زمام امور به دست جوان نورسی مثل علی بیفتد اگر اینگونه است پس اولین کار غیر خدا پسندانه را شخص رسول خدا انجام داد پیامبر در غزبه تبوک با وجود ابوبک علی را خلیفه خود در مدینه قرار داد رأی اکثریت قاطع مردم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 بلکه در کتاب شما از این قبیل احادیث فراوان است. رسول خدا فرمود علی با حق است و حق با علی است و هیچگاه این دو از هم جدا نمی شوند. در حدیث دیگر آمده ای جماعت انصار آیا شما را به کسی که تمسک به اومانه از هر گونه گمراهی است دلالت نکنم؟ عرض کردند چرا؟ ای رسول خدا فرمود همانا او علی است. پس به خاطر دوستی من او را دوست بدارید و به خاطر کرامت من او را اکرام کنید. همانا آنچه به شما گفتم طبق دستور خداوند و توسط جبریل بود. خلاصه کلام این که اجماع بدون علی حجت نیست اگر خلافت ابوبکر مشروع بود میباید علی با او بیعت میکرد و حالا اینکه ایشان بیعت نکرد و مخالف بود.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 چرا شبهه پراکنی میکنید هیچ دسیسه‌ای در کار نبوده اوضا بحرانی بوده و عجله در تعیین خلیفه به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان بوده است لازمه یه حرف شما این است که ابو عبیده جراح از امام علی نسبت به اسلام دلسوزتر بوده باشد و او وجود خطر را درک کرده باشد اما خاندان پیامبر هیچ توجهی به اطراف نداشته باشد چه دلیلی داشته که آنها تا این حد عجله کنند که حتی فرصت خبر کردن اهل بیت را هم نداشته باشند؟ فرصت داشتند اما سلاح نمی دیدند که اهل بیت خبردار شوند. علت اجلی آنها این بود که اگر صبر می کردند و نظر بزرگان صحابه و بنی هاشم را جویا شدند دیگر شانسی برای برنده شدن نداشتند. جالب این است که عمر سالها بعد گفت خلافت ابوبکر عجولانه بوده.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 پس از نماز جناب آقای حافظ شروع به صحبت کردند. شما زمن صحبتهایتان اطلب عجیبی گفتید. چرا ادعا می کنید که علی و بنی با ابو بکر بیعت نکردند؟ در حالی که تمامی علمان وشتند که علی، بنی حاشم و اصحاب همگی با خلیفه بیعت کردند. بله ما هم میدانیم که بنی هاشم بیعت کردند اما چه زمانی و چهونه بزرگان از مورخان نوشتند که علی و بنی هاشم بعد از شش ماه و پس از تهدید به قتل و تحمل اهانت های بسیار بیعت کردند واقعا از شما بعید است که سخنان عوام شیعه را مورد استناد قرار دهید این را بدانید که قطعاً علی با کمال میل از همان روز اول با ابو بکر بیعت کرد برمایش شما صحیح نیست واقعیت تاریخی مسلمان است که بیعت علی علیه السلام بعد از وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها صورت گرفت در منابع متبر زبط است که علی بعد از شش ماه یعنی بعد از وفات فاطمه با ابو بکر بیعت کرد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 طبری در تاریخ خود ابن ربه در اقد الفرید، ابن عبل الهدید در شرح نهج البلاغه، ابن قطعیبه در الامامت و سیاسه، جوهری در صقیفه و ابن شهنه در روزت المناظر قسمت از واقعی تأثیر هجوم به خانه امیر را آوردند. خلاصه جریان این بوده که ابو بکر علی را برای اخص بیعت احزار کرد. اما امیرالمومنین نیامد. ابو عمر را فرستاد. امام علی حاضر به بیعت نشد. عمر آتش فراهم بر تا خانه را بسوزاند. در این هنگام حضرت فاطمه فرمود ای پسر خطاب آیا آمده ای خانم را بسوزانی؟ گفت آری این کار برای آنچه پدرت آورده قویتر است. دیگری می وقتی ابوبکر مطلع شد که ادعی از بیعت او سرپیچی کردند و در خانه علی جمع شدهاند عمر را به سوی آنها فرستاد عمر بر در خانه رفت و از آنها خواست تا بیعت کنند ولی آنها از خانه بیرون نیامدند عمر هیزم طلبید و قسم یاد کرد که یا بیرون بیایید یا خانه را با اهلان آتش میزنم. مردم گفتند ای ابا در این خانه فاطمه است گفت او هم باشد می سوزانم. پس همگی بیرون آمدند و با ابو بکر بیعت کردند. مگر علی که فرمود من قسم خوردم که تا قرآن را جمع نکردم از خانه بیرون نیایم. عمر قبول نکرد. ولی هنگامی که ناله فاطمه را شنید به ناچار سوی ابو بازگشت و او را برای اقص بیعت تحریک کرد. ابو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 ابن الهدید می نویسد من برای استادم ابو جعفر نقیب نقل کردم که وقتی به رسول خدا خبر دادند که حبار ابن اسود با نیزه به حودج زینب دختر پیامبر حمله برده است و به همین سبب زینب بچه سخت کرده حضرت خون حبار را مباه فرمود. ابو جعفر گفت اگر رسول خدا زنده بود خونان کسی که باعث سخت جنین فاطمه شد را نیز مباه می کرد.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 مناوی روایت کرد که پیامبر فرمود دوستی علی حسنه است که هیچ گناهی به او ضرر نمیزند و دشمنی علی گناهی است که با وجود آن هیچ عمل خیلی نافع نیست. همچنین از ابن عباس نقل شده که رسول خدا فرمود دوستی علی گناهان را میبلد همچنان که آتش هیزم را میبلد. لطفاً معنای این حدیث را دهید. معنای حدیث بسیار ساده است.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 پس دیگر چه احتیاجی به این مجالس پرهزینه است؟ حرف شما کاملا درست است اما به این نکته توجه کنید که فرد مسلمان هر چقدر در اعمالش دقیق باشد ولی چون معصوم نیست مرتکب خطا می شود. خداوند متعال اسباب و زمینه هایی را برای جبران فراهم کرده تا انسان مؤمن با تکیه به این وسایل خود را در معرض عفو خداوند قرار دهد.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 زیارت شیخ عبدالقادر و امام اعظم ابو هنیفه را جایز میدانند در حالی که هیچ حدیثی از رسول خدا درباره زیارت آنان نیامده اما زیارت ریحانه رسول خدا را با وجود این همه حدیث و روایت بدعت میخوانند الان تصمیم گرفتم امسال به زیارت حسین علیه السلام بروم و از خدا طلب عفو و بخشش کنم امشب با تأثیر خاطر از خدمت شما مرخص می شبید. در این هنگام با پایان یافتن عرایز جناب نواب و تأثیر اکثر حاضرین در مجلس جلسه شب هفتم به خاتم رسید